بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قبتہ لله بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. الله محمد وآل محمد. وندعو احد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين. سیما بقیت الله في السماوات نارزین أعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده و امتهلهم بالمكارح و مخزهم بالمکاره توفیق الله خدمت عزیزان برادران و بزرگوار در این مناسبت لطف الهی شامل حال است بهره میبریم بریم از انوار سخنان متعالی امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام و علیه سلام الله در خطبه قاسعه نورانی نحج البناقه با محوریت ابلیس حال و هوای ابلیس شیطان و شیطان زدگان به قصد رسیدیم که خداوند سبحان فرمود که اگر ذات بنا بود که رخصتی در که عنایت انایت کند یعنی اون عامل اصلی و نکته اصلیی که شیطان از این طریق انسانها رو به دام خیش میکشد، اگر بنا بود که ذات باری تعالی به کسی رخصتی دهد و ادله کبر و عموماتی که نهی از کبر میکند استثنایی در اون وارد شود، کسانی که شایسته این استثنائی بودند یقینا پیامبران الهی بودند چون در میان انسانها این جماعتند که بیشترین سطح ارتباط با خداوند و بیشترین بهرهبرداری برداری رو از صفات الهی دارند اگر بنا بود که حس بزرگی و کبری هم برای کسی دست دهد این گروه و جماعت اولین مستحقین این مقوله و مسئله بودند اما خداوند چنین چیزی رو رخصت نداد پیامبران الهی هم نمیتوانند اهل کبر باشند چون در ذات خودشون فقیرند مانند دیگر انسانها یا ایها الناس شامل همه انسانها میشود حتی پیامبر اسلام یا یهالناسو انتمول فقرا الله این فقر و نیاز این که انسان موجودی است همان گونه که اشاره می کردیم ربطی یعنی هیچ اصالتی در ذات خودش و وجود خودش ندارد و دارد از سوی حضرت جانان و حضرت واجب بر وجود او میآید تفاوتی کند در این جهت بین پیامبر و بین مردم بین امام و امت و همین خاطر فرمود خیر پیامبران الهی هم مستثنا نیستند بلکه خلاف اون با توجه به این که این مردان بزرگ الهی به بالاترین مدارج توحید رسیدند به همین خاطر بیشترین حد خشوع و تواضع را هم برای حضرت باری تعالی نشان دادند و در وجودشون نشسته هست امام فرمود که کار به کشید که و ولکن سبحانهو کره علیه متکابر خداوند نخوشنود می دارد نمی تکابر رو حتی نشان دادن که برای اینها و رضی الله و اونچه میپسندید و پسندید برای این بزرگواران هم تواضع بود اینکه به هر جایگاه و رتبه و موقعیتی رسیدند اما در این حال بال تواضع رو به زیر می آورند. به همین خاطر اینها رو مأمورشون کرد آموزش داد به اینها که فعلا سقو به لرز هم اینها گونه ها خاک بگذارند افروف اف تراب وجود هم چهره هاشون رو با تراب تعفیر کنند به تعبیر آمیانه پارسی خاکمال یعنی گونه ها خاک بگذارند و چهره ها برخاک بنهند در پیشگاه حضرت باری تعالی عالیترین و نهایت مراتب تواضع و خضوع و خاکساری خودشون رو ابراز کنند نسبت به ذات حق اما این تکبر نسبت به خداوند نقطه مقابل اون تواضع به حق اما بعد دوم و خفض و هم للمؤمنین به این پیامبران و این بزرگان موظف شدند که برای مؤمنین هم تواضع خودشون رو خشوع در قبال خالق و حمد اشتناق از کبر در پیشگاه پروردگار و تر پیشگاه بندگان او خفز و اجناعت هم للمؤمنین توضیح دادیم دیروز که اینها خفز جناه برای مؤمنین کنند بال توازع رو به زیر بیاورند هرچند به یه جایگاهی به یه رفعتی نسبت به انسانها رسیدند و دیگران اما موظفن که گویا چنین احساسی رو نداشته باشند چنین تصوری رو نداشته باشند در برخورد با دیگران و قانون قوم مستضعفین در رفتارهایی اینها استضعف دیده میشد نه استکبار استضعفی که در این جماعت رحمیشه گفتیم نقطه مقابل مستکبرین مستضعفین هیچ رویه استکباری در وجود و رفتار این جماعت دیده نشود این پایان عرائز دیروز اما از اینجا سخن امام رو پیگیری میکنیم که قد اختبرهم الله بالمخمسه دو سه نکته بسیار ظریف رو اینجا امام مطرح کند خداوند همین بزرگان رو همین انبیاء الهی را اختبرهم بارها خواندیم اختبار از ماده تل از ماده خبر هنگامی که داشته داشته‌های درون یک پدیده برون شود و آشکار شود شکوفا بشه نام این اختبار است شرایطی رو مهیا می‌کنیم که این جوان این نوجوان ما استعدادهای خودش رو آشکار کند. بستر نبود که نشون بده خودش رو الان با شرایط و ابزار و موقعیتی که در اختیارش قرار دادیم خودش رو نشان میده که چه کار است به تحبیر ما نام این اختبار است یا نشان میدهد که توانمندی ها بالاست یا از پس این مراحلی که پیش آمده است برون نمی آید و به زیر می آید هر دو اختبار است یا به بالا می یا به پایین می لغزد. فرمود قد هم الله خداوند اینها رو اختبارشون کرد به چند چیز یک مخمسه من واجبان رو توضیح بدم اول کلمه مخمسه از ماده خمس با صاد خمس مخمسه به معنای ابتدان فرورافتگی است یعنی کف دست که یه مقدار گودی داره کف پاک گودی داره این رو میگن اخمس راحه یعنی گودی کفه دست اخم و راه هنگامی که انسان گرسنگی تحمل می کند در حدی که شکم فرو می روید به دلیل گرسنگی و حجم خالی معده این رو میگن خمس البتون خمس البتن مخمسه با این ریشه لغوی یعنی گرسنگی یعنی کمبود امکانات مادی قد اختبرهم الله بالمخمسه خداوند اینها رو اختبارشون کرد به مخمسه و بتلاهم ابتلا در همون مقوله اختبار یعنی جوری شدن بلو تو شی اخبرتهون وقتی که سر بند درون شی میزنیم و داشته های بررسی میکنیم چیست چگونه است نام این ابتلا است و ابتلاهم خداوند شرایط رو مهیا کرد اینها رو مبتلاشون کرد به مجهده مچهده از ماده جهد به معنای تلاش و کوشش کامل و جدی مستر می نیست و ابتلاهم به مچهده و تلاش کردند و متهنهم به مخافف ببینید این سواجی این که ما میفرمان قریب الب است اختبار ابتلاء، امتحان هر کدوم اینهای زرائفی داره که دیگران فرصتی نیست من خدمت دوستان بگم تصور بفرمایید. امتحان و مهنه در جاییست که شما توانمندی و قابلیت نقره رو محج میزنید وقتی سنگ نقره رو میبرن به کوره و میخوان این رو آمادش کنن ایارش رو بالا ببرن ناخالصیش رو بگیرن در کلام عرب گفته میشود امتحن از سائق و یعنی این صنعتگر این فزه رو محک زد و قابلیت این نقره رو امتحان کرد که اگر این کار در مورد طلا انجام می نام نامون چه بود؟ افتتان افتتن از سائق و از زهب میشد فتنه اگر تلا رو به کوره بردیم، عیارش رو بالا آوردیم، مشخص کردیم چیست؟ میرسد به عیار 24 یا نه نام این افتتان است اگر با نوره این کار رو کردیم امتحان است امتحان افتتان ابتلا اختبار چهار تا است که سنت‌های های الهی در وجود و آفرینش و معانی نزدیک به همی دارد به حالات و مختلف انسان این واجهگان متفاوت به کار برده میشه در قرآن فرمود و امتنه هم بل مخاوف مخاوف از ماده خوف می آید دیگه. یعنی چیزها دلگرانی می کند باور است امنیت رو زیر سوال میبرد بالمخاوف چهارم و مخز هم بالمکاره خوب دقت بفرمایید عجیب این تعابیر حضرت و مخز و مخزهم بالمکاره مخز به معنای چکان دادن حرک او زنزله او به معنای چکان دادن شدید منتهی تکانی که از درون و اون چیزی برون میاد شما این گاهی دیدید دیگه این ارز به خدمتون ریختند این ماستر درون این مشک رو این هم داره دست دستش گرفته است تو این چوب مشک رو داره میکوبد میزند تا به جای میرسد که آهنگ و صدای درون این مشک فرق میکنه در گوش خود این کسی که داره میزنه و اهل این کاره میفهمه که دیگه وقت آن است که در به مشک رو باز کند باز میکند دوغش رو رها میکنه میره بعد اون چه میاد این کره ناب که مانده است این مخزه وقتی تکان میدن که برون میگشن اون جوهر اصلیشو به در میارن پس اون تکانی که از دلش یه چیزی متولد میشه این مخزه فجاء اهل مخاز و الا جزء اون درد زایمان رو مخاز میگن در کلام عرب از این ماده مخز چون اون حالات خاص به زن دست میده اما از اون چی میشه؟ متولد میشود فرزندی و نور دیدهی که به مجرد اینکه نور دیده یه گریهی میکند این مادر در اون حال میخنده متوجه میشه که فرزندش از صحت کافی برخوردار است مخزه از این ماده میاد خب و مخزه هم بالمکاره و خداوند اینها رو تکانشون داد به مکاره به اموری که کره دارد کره دارد دشواری و سختی و شاید ناخوشی دارد دقیق بفرموین چی شد مطلب امیر فرمود که خداوند این بندگان شایسته خودش رو اولیا خودش رو انبیاء آران اینها رو اختبارشون کرد به مخمسه مشکلات اقتصادی اینها رو ابتلاعشون کرد به مجهده به جد و جهد و تلاش و کوشش های بسیار زیاد زمینه رو مهیا کرد که چنین باشند و امتحان هم بالمخاوف اینها رو امتحانشون کرد به یه مسائلی که استراب و نگرانی و دلهره ایجاد کند برایشان. برای و اینها رو مخز هم بالمکاره و دشواری ها و سختی های اونچنانی حالا چی شد که امیرالمؤمنین این جمله رو بازگو می کند و ادامه مطلب رو الان که خیلی روشن است عزیزان از راهکارها و ساز و کارهایی که خداوند برای تربیت انسان و زدودن تمام اون هواها چبرها قرورها که توفه شیطانی برای انسان است و راهکار نفوذ شیطان در وجود انسان از ساز و کارهایی که ذات باری تالا به کار می بندد در تربیت ما تا ما را پاکیزه از چنین مفاسد و از چنین بنوعی زیانهایی بکند نیست که امیر در اینجا مطرح میفرمایند. به دلیلی که شرائطی گاه برای انسان پیش میاد که انسان رو می برد به سوی خوی ابلیسی و تفرعون عزیزان خوب دقت بفرمایید خوشی ها رفا جون چناننی ان الانسان لیدقو الراو مستقن ثروت سرشار تنعم مترف بودن از دل اون کبر و غرور به در میآید سکر به دست میاد، سكرال قنا، ماستی سرعت، سکر القنا مستی ثروت سکر القنا از است که موجب می شود غرور وجود انسان رو می گیرد گفت که به دولت برسی ماست نگردی مردی مرحومت خدا در امسال و کم یه جمله ای رو متعه می کنه که این قدام های ما می گفتن حالا با همون زبان و فهم اون روز خودشون نان گندم نگوت هر است خیلی موقعیت ها اگر دست کسی باشه خدا می چه می کنند ها. نه خدا رو بندند و نه خ نه خدا را نه خلق را نکات مربوط به این شرایط اقتصادی موقعیت اقتصادی یه زمینه و یه بستریست عزیزان که اون قرور انسان رو و نخبت انسان رو به در از وجود آدمی تناساییها ها که انسان به نوعی به تنبلی ها و کسالت ها رو می کند اون شرایطی که انسان جد و جهد لازم رو ندارد یعنی یه موقعیت خوشی که فراهم میشه که به نوعی انسان به یه تناسایی کشیده میشود نتیجه اون توهم است نتیجه اون تکبر است نتیجه اون یه غرور و نخوت بی جاست نوعا میبینید انسان هایی که کوشش، تلاش در وجودشون افتاد است به اصطلاح کارافرینند به تعبیر امروزی ما اینها اهل جد و جهدن به تعبیر قدیمی ما و قدیمی های ما پینه ی دست داشتند اینها متکبر نمیشند اما اون که با ناز و تنعام اون که به کنجی نشستند و ناز بالش سیر سر دارند و تبهم میگیردشان اینها رو این یا است که تهدید می‌کند جماعت و انسان ها رو شرایت خوشی اقتصادی شرایطتی که در اون تلاش و کوشش نیست تناسایی وجود دارد جده به تعبیر کلام عرب جده فرانق ان شباب وبلفرانق و جده مفزدتون لمار یا مفزده به شاعر عرب جوانی تاسانی پولداری بیکاری بیاری نتیج این میشه میشه که برغرور و, و بیاری توجه میفرمایید. گاه امنیت ها و خاطر آسودگی ها یعنی شرایطی است که دیگه هیچ دغدغه‌ای نیست هیچ چیزی انسان رو تهدید نمی‌کند تو این شرایط امکان بروز کبر و غرور در وجود انسان بیشتر است چون با خیلی از واقعیت ها سر و کار ندارد تو عالم ذهنش چنین انسانی زندگی می‌کند و فکر می‌کند هنگامی که دشواری و سختی پیش روی انسان نیست همیشه مسیر باز است به هیچ مانعی برخورد نمیکنه از هیچ کجا تهدیدی نداره همه چیز کف دستش اراده میکنه میبرند میآورند میگذارند برمیدارند. از دل این شرایط و موقعیت تفران بیرون میاد. این شرایطی است که که بر برای انسان ها. امیرالمؤمنین فرمود برای تربیت وجود این پیامبران الهی و طبعا پیروان این پیامبران الهی خداوند شرایطی را قرار میدهد که اینها در این شرایط اون پاکیزگی جان و تحارت روح رو پیدا می کنند. امام در حقیقت داره ما رو سراغ چه می برد؟ آیه 156 سوره مبارکی 154-156 سوره مبارکی بقره می بره و گویا در گوش جانمان علی داره تلاوت می کند و نجوا می کند و لنبلوونکم بشی به من الخوف والجوع و نقص من الانفس و والثمراد از شعر صبرین الذيین مصیبه قال و نول الله به ال حج اون اوله اشعلله همزننبانتون منرد بهم و رحمه الله ا چه که خداوند سبحان جوری می کند در زندگی که بنشینید برخیسید زمین بخوره انسان بلند شه واقعیت وجود رو ببیند اراده های حاکم رو در هستی متوجه باشد شرایط متفاوت زندگی برای او پیش آید مشستن برخواستن اوج فراز فرود و تمام اونچه در آیه شریف مطرح میکند داشتن و نداشتن رو ببیند این جان تعادل پیدا میکنه انسانی که فقدان رو نبیند همه چیز براش وجدان باشه و بودن باشه تا عادل وجودی پیدا نمی کند. یه جایی چریش درون ناقبت سر کند. و نبلن نکن بش انمللخاب گاه این نامنی ها که میاد شرایط خاص اونگاه انسان به امنیت که می رسد دیگه غرورش نمیگیرد متوجه میشه چه خبر هست شرایط رو درک می کند واقعیت ها رو لمس می کند چنین انسانی. انسانی که بلاخره ناز پرورد تنعان بود این نمی تواند اون اتکا به ماهیت وجودی خودش داشته باشد سختی ها را پشت سر گذاشته باشد در سوره مبارکه مؤمنون این واژه رو اونجا و در همه جای قرآن خدمت دوستان عزیزت مطرح کردیم بحث فلاح مفله قد افله المؤمنون اشاره شد خدمت دوستان فعل یعنی شخ کردن و شکافتن چه ربطی داره به رستگاری قد افله المؤمنون آهن رو میزنن خورد میکنن میگن یفله هدید. این چه ربطی به فلاح دارد؟ رستگاران، کامیابان، اونا های که سینه رو ستر میکنن آماده به صف مشکلات میزنن منتظر نیستن کسی موانع رو براشون برداره به سرپنجه هممت، تفکر، تدبیر، اراده میزنن به صف مشکلات و به شدت فرو میرن پس پنج و را میکنند به کامیاب پیروز مییستند بر بلنداوی لطف الهی و تبسم شادمانه بر لب دارند که قد افلحل مؤمنون به زیبایی امیرالمؤمنین این نکات رو مطرح کرد پس یه حالاتی، یه اعتباراتی است در وجود انسان که غرورآفرین است خداوند سبحان در ساز و کار و تربیتش با پیامبران الهی شرایطی رو ایجاد میکند که کاملا جان اینها پاکیزه میشه فرمود حالا دیگه عبارات حضرت رو بهتر متوجه میشیم قد اختبرهم الله بالمخمسه خداوند اینها رو اختبارشون کرد بالمخمسه اینکه گاهی داشتن باشد گاهی نداشتن باشد دشواری های اقتصادی رو ببینند شنیدی دست وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی الله و الله علی محمد جبرئیل یا رسول الله علیه اعلی سلام میرسونه چی میخواین در اختیار رو شما قرار بدیم از این کنوز آسمان ها و زمین یا اخها جبره پروردگارم را سلام برسان بگو دوست میدارم روزی داشته باشم و روزی نداشته باشم اون روز که دارم با بندگان دارای الهی باشم اون روز که ندارم با بندگان خداوند که توحید استن تیه فکر و زندگی کنم حال اونها در کنم و با اونها باشم قد اختبرهم الله بالمخمسه و بتلاهم بالمجهده و خداوند این اولیانش رو مبتلا کرد به اینکه اینا نه خانه بنشینند انداز آسمان بر سرشون ببارد نه تو تمام ها در مسائل اقتصادیشون بکوشند وقتی خدمت دوستان عرض کردم بارها گفتیم میدانید از بابی که گاهی توهمات ذهنی میاد عرض می‌کنم از مدینه میرید کجام احرام میبندید میرید مکه شجره وقتی که میرید به طرف مسجد شجران تابلوهای اصلی که کنار جاده میبینید یکی از بزرگترین تابلوها چیست؟ آبار و علیین آبار و علیین آبار جمع بیره یعنی چاه قریب سی حلق چاه در شرایط اون روز مدینه همیر المومنین با دست خودش حفر کرد این همون است که کیسه به دوشش داره میره گفت یا بلسن چی داریم به دوشتون فرمودن هزار نخل خورما. قه قه خندید. گفت کیسه دوشه چون هزار نقل خرما بامدن هزار دانه خرماست به فضل الهی و به احنایت الهی هزار اصله خرما از اینها روش میدم و ایجاد میکنم و کرد کارافرینه اون نخ نشین از بود سیاسی کارآفرین اون روز مدینه وجود نازنین امیر و بهره برداری هایی که مردم از تلاش های اقتصادی علی در میدان و حوزه اقتصاد اهل جد و جهد در مسائل معنوی نخلستان‌های بن نجار کوفه نخلستان نخلستان‌های مدینه در سحرگاهان منتظر نجوای دلانگیزی علی است مسجد کوفه منتظر انس شبانه علمی علی است کلماتی چو دراویزه گوش مسجد کوفه هنوزم مطهوش فاجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت در عبادت مجهده در اختصاد مجهده جد و جهد در تمام زمینها، در حوزه دفاع از دین خداها لا فتا الا علی لا سيف الا ظلفغار فضل الله المجاهدین علالقوعدین اجرا عظیما فرمود و طلاهم بالمجهده خب تو این کسی که اهل چنین حال هوایی است دیگه کلام حضرت رو داریم میگیم حیف نگیم آمد و وارد شد کسی است که این بالاخره از شاهزادگان ایرانی است ابی نیزر اتفاقا این فرزندی هم داره که در کربلا کارها کرد در رکاب سید شهده این فرزند عوی نیزر ایرانی تبار این از شاهزادگان ایرانی بودست از اون دودمان اومد خودش رسان به مدینه و قلام حلقگی حلقی قلامی خدمت به امیرالمومنین رو به پیشکار بعض از املاک علی شد هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم امیرالمومنین گفت وارد شد علی گفت که چه خبر است؟ گفتم آقا آب متاسفانه ست تا آب پایین رفت از حوضا چهان خوب نیست فرمود غذای چیزی داری گفتم به مقداری که حدود درست کردم روغن بدبویی داشته خوب نیست فرمود بیار دست رو شست و دو لغم سه لغم خورد از این تا رو گفت کننگت رو بده گرفت ابزار کار رو رفت تو چاه امیر دیدم میزنه میگه الله اکبر علی میزنند. کار کرد علی اومد بالا عرق ریزان با اون وضعیت دوباره رفت درون چا یک بار دیدم صداهای علی بلندتر شد صدای فبران آب برو شنیدم امیر بالا اومد مجدد دستاشو شد گفت ابی نیزر قلم کاغذ بیار یه وقفنامه بی نزی رو نوشت که در نحجل باده اون وقفنامه رو میبینیم که امیر نوشت خب یه مردی که این گونه کار میکنه مجهده دیگه کسی که این گونه کار میکنه که بره در وجود او نمیاد عزیزان یعنی این جد و می ریزد. اون قرور انسان و تبهم انسان رو پاکیزه میکند وجود انسان رو و ابتلاهم بالمجهده و امتحن هم بالمخاوف و خداوند اینها رو به خوف ها به شرایط مختلف اجتماعی همه چیز رو ببینن لمس کنن اینها رازمود که اینها ترسان و لرزان نباشند اینها بی اعتماد به انایت الهی نباشند اینها خوف رو هم ببینند اونجا در شرایط خوف دستشون بلند کنند و از ذات باری تعالی بخواهند رب بجعل هذا بلدن آمنا از ذات ها غمنیت رو طلب کنند و اون که به رو برود. و مخزه هم بالمکاره توضیح دادیم چلمات رو اول و اینها رو تکانشون داد خداوند به دشواری ها و سختی ها از دل این دشواری ها شخصیت های عالی اینا چی شد؟ برون آمد مخزه متولد شد از وجود اینها و از حال و هواشون اون های متکامل عالی به در آمد و اون حالات نفسانی خوش فلا تعتبر رزا و سختبر ماله بالمال و جهلا بمواقف الفتنه عزیزان دو عامل و بفرمایید سه عامل است که عمده کبر انسان ها از این سه عامل به وجود میاد یعنی عمده تکبر انسان ها فخر انسان ها عصبیت انسان ها از سه عامل به وجود میاد اولی اول اول اونها بدون تردید مال است زر است یعنی اتکای به ثروت مال چیزی است که در دنیا می‌بینیم دیگه مگر تقسیمات امروز دنیا بر اساس چی؟ اصلا جغرافیا سیاسی دنیا بر اساس غیر از این تقسیم بندی میشه. حالا آره جهان اول و جهان چندو و اون تقسیماتی که قبلا بود الان ها که در دنیای امروز از دیروز همین بوده است. یعنی یکی از عواملی که انسان ها فخر به اون میکنن ماله. انا اکثر منهم مالن. اولین جمله‌ای که ولید ابن مغیره. در مقابل نبی مکرم لولان نزله هاذ القران گفتن چرا این قرآن نازل نشده است بر این دو نفر چرا بر یتیم عبدالله نازل شده است بر کی نازل بشه قرآن صراحتن خود کلام خدا بازگو میکند بر ولید بن مغیره در مکه اوروہ ابن مسعود سقفی در مدینه اینا مگر کی اند اینا اولین متملان و سرمایه‌داران جامعه اون روز عرب اند من با این ثروتم چطور از این یتیم عرض به خدمتتون پا برهنها تبعیت کنم ولید بن مغیره میگوید مال من مالم منچلی نه یعنی این مال اتکای به ثروت آفرین اگر خاطر عزیزان باشد بزرگوارانی که اون شب بودن اون حدیث نقضی که خوندیم حدیث عنوان بصری ابو عبدالله عنوان بصری که اومد خدمت امام صادق حضرت فرمودن وطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، اون حقیقت بندگی رو تو وجود خودت بخون بدون بجون اگر میخوای عبد باشی اولین نکته از اون سه نکته این که حضرت فرمودن انیاق انلا یر العبدو فی ما خبله الله ملکند نفس تمام دنیا مال من آن وقتی من خودم رو مالک اینها ندونستم هیچ غروری در وجود من نمی آید. اما اگر یه نمیدونم چیز کچکی رو دست ما دادند و بعد ما حس کردیم که این ماییم که این چنیدیم تمام است. تمام است. اولین چیزی که انسانها رو به کبر شیطانی میبرد، به و شیطان رو این خوب سرمایه گذاری می اتقاه به مال عزیزان. دوم اتقای به چیز قدرت. ضرور زور. اتقای به قدرت. همینطور است. ریاست صدارت. قروراور است عزیزان. به تعبیر عرب‌ها یا حبزا اماره ولو عل هجاره چقدر خوب است امارات ولی اینکه انسان رئیس یک سنگی بکنن رئیس ابدارخانه بکنن مثلا بگن مدیر کل تشریفات ابدارخانه مثلا این دیگه چی میشه از امروز این عنوان و تیتر رو تیترا به سینهش این چه حالتی دست میده خود اینجا خب بجا خود قدرت خیلی غرور میاره انسان ها انسان ها رو از بندگی خدا به در کرده در طول تاریخ این قدرت‌ها و چه کم بودند انسان که به اون اوج قدرت برسند اما پیشانی بر خاک بگذارند خضوعشان رو برای خدا و برای خلق نشان بدن، قدرت یه است که کبرابر است و قرور آفرین است میبینیم بالاخره در طول دنیا داریم میبینیم در طول تاریخ سلاطین شاهان بزرگان قدرتمندان امروز دیروز حال هوای اینها رو دیدیم اینقدر قدرت ها قوید چوکت ها خدایگان ها اینها رو دیدیم و مشاهده کردیم دیگه بالاخره. سومین این عامل علمه علم هم از ایزان گاه غرورآوری می کند. تو روایات دینیمون داریم حتی از جنس دینی دارم رز کنم تو روایات اون داریم کسی که طلب کند علم را لیماری بهل ولما و یباهی به ها میره دنبال علم که این علم عامل مطرح شدن و او در جوامع باشد. با صاحبان نظر و علم دهان به دهان می کند، گفتگو می کند، حاکمیت خودش رو نشان با مردم این علمش رو مطرح می کند. من على اصف, من على اصف شنیده ایم که می عوام کلانهام به دیگران. عوام انام، یعنی دیگران این عالم میشه خودش چیزی دیگه. فهمودن کسی که علم رو برای این مسائل به جوید علیه لعنت الله هست، این علم نیست این عین جهل این عین جهل نه علم که علم بخواد اما درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیراوری چرخ نیروفری را وقتی این درخت تو بار دانش بگیره همون تمثیل قدیمی خودونه که شاخه‌هاش پایین میاد یعنی هر انسان از علم پر بشه باید از خودش تهی بشه خالی بشه و که این علم نیست این جهله امیر المومنین بسیار زیبایی و ریشه ای فرمود بدونید فلا تعتبر الرضا و سخت بالمال و جهلا جهل به اشتباه نکنید گمان نکنید اون رضایتمندی اون خشنودی، اون موفقیت به تعبیر امروزی ما کامیابی اینه که ملاکتون برای سنجش این مسائل ملاکتون برای سنجش رضای خدا اونها که اعتقاد به او دارید ملاک برای موفقیت و امتیازدهی خودتون در جامعه گمان نکنید مال و ولد است مال که مال است زر ولد همون زوره ولد همون زوره همون قدرت نماد قدرت ولد ولا فلا تعتبر و رضابل و سختبل ماله ولد جهلا به مواقع الفتنه نکن از جهت نادانی به آزمون ها و امتحان های الهی چنین فکری رو بکنید استهزار دارین من ناچارم ارز کنم در آین اسلام در نزد موحدان در کتاب الهی در آز... آموزه های دینی ما قنا و فقر عزیزان ماهیتن نه مفیدن نه مضرن نه مثبتن نه منفیان یعنی غنی به ماهو و غنی فقیر به ماهو و فقیر هیچ فرقی نمی کنن هنگامی که در کنارش تقوا میاد میبردشون بالا غنی با تقوا فقیر با تقوا غنی غیر متقین فقیر غیر متقین این میشه ملائکه بالا پایین رفتن اگر در کنار این قنا تقوا بود بسیار عالیه نعمل می‌نن علیا تغوا القنا چه کمک خوبیست به تغوا قنا بعد میشه مال راو که از بهر باشی همول نه ممالون سالهون خاندش رسول آب در کشتی حالا چه کشتی هست آب اندر زیر کشتی پشتی هست آب وقت زیر کشتی کشتی راه میره اگر تقوا باشه آب زیر کشتی تقوا باشه خوب میبرد جلو خیلی کمک میکنه. اما اگر مال اومد تو کشتی آب اومد تو کشتی قرار گرفت قرغش میکنه. اگر اومد مال سواره بر انسان شد تقوا رو از کشتی بیرون کرد از کشتی نفس قرغ هست نتیجه جوان. پس ما قنی یه متقی رو حرمت میگذاریم به تقوی و کرامتش میگذاریم. فقیر متقی را کرامت میگذاریم. اما اگر از هر کدومشون تقوا رو بردارید ارزشی ندارن. نه قناه نه فرقی هم نمیکنه. کن توجه فرمودید؟ اینا ملاک سنجش نیست فرمود فلات عتب و و سخته بالمال ول ولد جهلاً به مواقع الفتنه ول اختبار فی موزه القناه والاقتدار چون نمی دونن خیلی یا نمی اختبار خداوند را به قناه و اقتدار به زر و زور گمان میکنن که اینها چیست؟ اینها مثلاً عامل موفقیت عامل این نیست. اما هنگامی که نباشد بدون رضای الهی که فایده نمی کند از دل و اون قرور که برونخبت ابلیسی به در میاد بعد امام استشهاد می کند به این آیه شریفه فقط خال صبحانه و, و تعالی مگر گوش ندادید خدا آیه پنج و پنج سوره مبارکه مؤمنون ایحسبون انا ما نمدهم بهی من مال و بنین نصار اولهم فالخیراند بلا یشعور آیا گمان میکنند؟ که اگر ما امداد و کمکشون کردیم در توسعه مالی و در فرزند و قدرت اگر ما قدرت و مال دادیم این نصار رو فل خیرات؟ یعنی ما شتابان به ایشان خیر دادیم نه هر مالی خیر نیست و هر قدرتی خیر نیست بلا یشعرون و این قدرت به کجا میبردشون این ثروت به کجا میبردشون سروتی که قدرتی که مبعد و دور کننده ای انسان از خدا و خلق باشد عین قهر الهی است، ثروت و قدرتی که مقرب و نزدیک کننده ای انسان به خدا باشد عین لطف الهی است. پس باید بازخورش رو ببینیم بود عملکرد نتیجه رو ببینیم که چی میشه؟ وقتی این حدیث و همهجا در تفسیر خدمت دوستان گفتم بعضی از اصحاب ها به که روی این غذایا ها تسلط داشتن و ذهنشون باز بود یه وقتی اومد خدمت تمام صده گفتیان رسول الله من میترسم از در و دیوار داره برام نعمت میریزه. گاهی مادر ها دعا میکردن به چار مادر برو دست با خاچ بزن ذره بشه طلا آقا اقا اینطوری شده هر کار میکنم من اصلا تو هر جنسی میریم بازارش اینطور میشه خیلی اوضاع داره از در و دیوار من میترسم نکنه من مطررف شدم. نکنم از از در فرامدن نه یه جمله بهت میگم هنگامی که موقعیت اقتصادی تو دستت بازتر بهتر میشه آیا تو احساس میکنی به خداوند نزدیکتر شدی یا دورتر شدی گفت خدا را شاهد میگیرم که آن به آن حس میکنم به خداوند نزدیکتر شدم فرامودن این لطف و عنایت الهیست به تو او را قدر شده اما اونجا اگر حس کردی که این نعمت این خونه پنجامتی شد 500 متری؟ تو 5000 کیلومتر از خدا فاصله گرفتی واخسرانا وا اگر تو کارمندت نمیدونم معمولی بودی حالا شدی مدیر کل این اداره حالا دیگه این سونو رو که نگاه می‌کنی جوری دیگری نگاه می‌کنی واخسرانا اینو دقت کن نوسارونهم فل خیرات بلای اشورون فان الله سبحانه یختبر عباده المستكبرین فی انفسهم برو دیاهل مستظعین فی اعینهم گاه خدا امتحان میکند و اختبار میکند به همون معنای که گفتم بندگان و عباد مستکبرش رو البته فی انفسهم چون استکبار وجود حقیقی ندارد چی توهمه خداوند اونهایی که تو نفسشون متکبرن خودشون به خیلی بزرگ می گاه اینها رو اختبارشون می کند به اولیه هلمستزعفین به بندگان شایسته مؤمن خودش که مستزعفند البته اینو مستزعفند فی اعیونهم در چشم این مستکبران خداوند این مستکبران را به این بندگانش آزمونشون می و امتحانشون می کند. که حالا اونها با امکانات و شرایطی که دارن با اینها چطور عمل می چه تو پاسخ اینها رو میدن؟ چگونه با اینها رفت؟ چه هجابی بینشون ایجاد میشود؟ به همین خاطر و لقد دخل موسبن امران و ما اخوه هارون ها اینجا یه تنبه ایجاد میکنن و یه تمثیل تاریخی میارن وجود و بارکه ما داخل شد موسبن عمران و همراه او برادرش هارون بود علیه هم السلام فرعون. خب شنیدید دیگه بالاخره کار اونجا با کشید که جناب موسا اون پختگی لازم رو پیدا کرده است و شمان وادی ایمنگهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت رو عیب گنت. اون ده سال رو تک کرد. حالا دیگه ساره به اهله با اهل خانواده آمد و از خداوند خواست. هارون رو هم خداوند هم راه است. بارد فرعون شد. بارد بر بارگاه فرعون شد. این موسا است که در مصر اسمش موسپن فرعون بوده شازده مصر بوده در کاخ فرعون بزرگ شده است با فرعون ذل به خوبی آشناست قدرت و اقتدار فرعونی رو میدونه کاملا حالا خدا او گفته از جناب موسا اذهب الى فرعون انهو پقا شما خودت برادرت برو صاف مقابل فرعون بیست بگو ارس معنا بنی اسرائیل رو بگو که دست بردارو چنین کنه، بنی اسرائی رو راها کنو موسا هم همونطور با امر الهی وارد شد موسی و هارون بر بارگاه فرعون. و علیه مدار و صوف. بر بردوش این دو برادر مداره مدره دوشنداز یه دوشندازی از سوف است یه دوشندازی از پشم است یه جامعه خیلی ساده و معمولی و به عیدی همال عسی و اینها. ارز به خدمتون لیستی از امکانات و تدارکات نظامی و تسلیحاتی و معاهده هاشون با دولتهای قدرتمندم ندارند دست دوتریشون اسی جمع اصا قوس قسی اصا اسی دستشون اسی است و ایدی همال اسی فشرط حالهو محکم موسا گفت شرط حالهو اینا شروع کردن شهرد گذاشتن برای که برای فرعون. اینا شروع کردن به شرط گذاشتن و پیش شرط تعیین کردن برای فرعون اسلمه اگر اسلام بیاورد ببینید اسلام اسلام مسلم موسی میگه ای فرعون مسلمان بشو دیگه میدونیم این مسلمان بشو مسلمان بشو ما نیست این اسلام چیه لقویه یعنی تسلیم یعنی تسلیم خدا بشو یعنی دست است فرعون برد نگو انا ربکم رب الاهالا از گرده بندگان خدا ظلمت رو بردارن ابته بر اسرائیل اینها رو به اسارت کشی. کشیدی اصلا اگر تسلیم خدا بشی من موسی تضمین میکنم برای تو بقا املکه بقای رو این آقا با این چوبش آمده با این لباس پشمینش حالا میگه تو تسلیم خدا باشم من ملک تو رو میکنم باو امک و دوام عزت و دوام عزتت رو من تضمین میکنم فقاله به مجردی حالا خوب عجیب زیبا میفرمانمیرالمؤمن وقتی که این جمله رو گفت فرعون رو کرد به اطرافیانش شروع کرد قاه خندیدن الان ترجممون منهاسین میبینید این دوتا تا رو تعجبتون نمیکنه. یشرتان لی دوام الاز... اینا میخوان عزت ما را ترمین کنن و بقا الملک و دوام و بقا ملک ما رو میخوان تزمین کنن و هما به ما من حال الفقر و زل و حالی که ببینید این جامه شونه این قیافه شونه این امکانات اینا چی دارن که ایتون میخوان با تو حرف میزنن خیلی لطیفه این کلمات حضرت خیلی عمق دارن عزیزان هازاب ما ترون من حال فقر و ذل فهل لا علیه ما اصابرت من هم کو امکانات اینها اینها که بر سر و گردنشون اینها که بر وجودشون امکانات مادیشون دیده نمیشه الا القی عليه اصابرت اصاور اسوره اسوره سوار سوار دست برنجان و پای بست خلخال به تعبیر ابو نصر فراهی و رساب سبیان دو معنا داره اصاور و اسوره یک دست بند دوم گردن بند الان دیدید این قهرمان ها مدال می چکار میشه به گردنشون مدال طلا میاندازن نغره میاندازن دست گل الا القی علیه اسفره تن من ذهب این کوین امکانات اینها کو مدال های افتخارشون کوین این ها که چیزی ندارن اینجا از این طرف اون طرفشون که روی سینه‌شون این علامت ها نقش نشده است اینو کی چیه نامه دادن کو زورشون کو کامدن با مایتور صحبت میکنن امیر المؤمنین از زمان للذهب و جمعه به دلیل تکشه‌ای که به چی داشت فرعون به قدرت مادی به طلا و نور نشانه تمول دیگه امکانات مادی و اقتصادی است به دلیل تکی که چشمش رو پر کرده بود مسائل اقتصادی اعزامن للذهب و جمعه و اعتقاراً لسوف و لبسه و به خاطر تحقیر وضعیت موسا جامشون وضعیتشون پوشششون و هارون بعد امام جمله عجیبی رو میگن که خیلی تو دیدگاه‌ها تاثیر داره این کلام و این شناخت عزیزان لو اراده الله اگر خدا میخواست لو الله اگر خدا اراده میکرد و میخواست سبحانه او لانبیا هی هی سبعهم ان کنوز از ذهبان کنوز از زهبانه و معادن الاردیانه و مقاه رسل جنانه و انیه شرم اهم توی اورا سما و حوش الارزین لفعل اگر خدا میخواست انبیاء الهی مثل موسی، مثل عیسی، مثل پیامبر اسلام وقتی که مبعوث میشدن خدا تمام های ثروت زمین رو اگر میخواست در اختیارشون قرار میداد کنوز از زهبان یعنی گهنچ های طلا. و معادن اقیان و معدن های زر ناب اقیان زر ناب و مقارس ال جنان تمام امکانات و جنگل ها و منابع و باقه روی زمین رو عمل و اختیارش به اینها می داد و ملک اینها قرار میداد و اگر خدا می‌خواست خواست محشور می کرد با انبیاء خیش از آدم تا خاتم محمد مصطفی محمد محمد محشور میکرد با اینها تویور و پرندگان و آسمان رو در اختیارشون قرار داد یعنی تمام امکانات زمینی و آسمانی رو اگر خدا میخواست انبیاء الهی میشدن قدرتمندترین و سرمتمندترین انسان ها یه چنین انسان هایی میشدن و اگر خداوند میخواست اینا که چیزی نیست و وحوش الارزین شیر و پلنگ و روباه و فیل رو نمیدانم همه حیوانات رو هم در اختیار اینها عرض به خدمتون این چنین لفن آمی اگر این اتفاق میافتد چی می اگر پیامبران می اولین مردان اقتصادی اولین قدرتمندان اولین ثروتمندان اولین متصرفان در زمین ولو فعلا سقت البلا و بطل الجزا اگر اینطور می دیگه سنت ابتلا و شکوفایی انسان ها باطل می شود. دیگه جزا الهی اصلا معنا. نداشت بخونم الان میگم چرا و از محلت الانبا دیگه مزمهل میشد خبر دادن انبیا از آینده انسان ها و بهشت و دوزخ و دیگه نام از بین میرفت و لما و جبل القابلین و المبتلین دیگه اصلا عجر برای صاحبان عجر محقق نمیشد عجر مبتلین اونا که مبتلا میشن محقق نمیشد و لست حق المؤمنون سواب المحسنین و دیگه مؤمنین سواب نگوکاران را نمیبردن و لا لظمت الاسماع معانی ها دیگه اسماء معانی خودشو نداشت یعنی مؤمن و کافر و فاسق و متقی و محسن دیگه اینا چی بود؟ معنا بود بدونید چی میفهمن ما شما در ایمان میشنوید یه یتیمی برخواسته است از کنج جزیرت العرب نه از تیزفون نه از جندیشاپور نه از ایوان مدائن نه از آکادمیای افلاتون نه از اوج قدرت هرقل نه از امپراتوری روم نه از امپراتوری ایران نه از کنار سرزمین های خشک تفدیده یه در بیابان های یه مردی که سوابق چوبانی هم دارد حتی با تمام اون وضعیت با تمام اون سادگی در وجود برخواسته است و گفته است قولو لا اله اللله تفلهو گفتید سمعنا و اتعنا قفران کربنا و علای کن مسیر چی شما رو گرفت و جزبتون کرد؟ چه جاذبه ای شما رو کشید به او چه جاذبه ای آیا؟ موقعیت اقتصادی اون بود؟ آیا موقعیت اجتماعی اون بود؟ آیا قدرت چه امتیازی خواستین تو دنیاتون ببرید؟ از این که شنیدید این ندارا گفتید ربنا اینا سمعنا یا اینادی لیل ایمان اینا منو براب بکن فا اومدنا هیچ کدومی اینها براتون نبود و دونستید که وقتی گفتید بله و اومدید پای کار باید پا سختی هاش هم بنشینید بیست. البلا تا که پذیرفتید سنگ ها بود که باریدن داشت ابتلاعات هم اومد دشواری هم اومد چی بود؟ این روحیه است که مؤمن مؤمن میشه یعنی شما برای حقیقت ایمان برای زیبایی و شکوه توحید برای حقیقت فضیلت شرافت نبوت برای عظمت و جایگاه بلند تمام تعالیم نورانی که از دل این کتاب مستطاب بیرون میاد اومدید و دانستید که این نهاز القرآن یهدی للتی هی عقبم ولو این که بدونید این دن... قرآن نه ریاستتون میده نه پولتون میده نه صدارتتون میده اما دانستید انسانتون می کند عظمتتون می دد کرامتتون می تقواتون می به غرب الهی می رسد به اونجا می رسد که این نه للمتقی نه حداق و می و میرسید به اون اوج اومدید به تمام وجود ایستادید اما اگر قیل از این میشد اگر انبیا به تعبیر می میشدن اولین قدرتمندان میپلکیدیم دور انبیا برای چی برای اینکه چیزی به تعبیر این عوام الناس به ما سد. برای که ای ببریم از این در. از زورشون از قدرتشون از موقعیتشون اگر مطیعشون میشدیم از امکاناتشون میترسیدیم که اگر نه ممکن است ما رو بزنن نابود کنن ویران کنن دیگه اصلا چیزی باقی نمیموند ابتلاه و امتحانی باقی نمیموند خداوند پیامبران الهی رو جوری قرار داد که صرفا به خاطر حقیقت وجودی اینها انسان ها جذبشون بشن به سوی اینها کشیده بشن که با این چشم افتادن به حقیقت وجودی اینها دیگه نه کبری میماند اگر انسان رو درک کنه نه قروری میماند نظری میماند نزوری میماند که مستقلن بخواد وجود انسان رو پر کند و فرا بگیرد خیلی زیبا اجازه بدید یه بار دیگه عبارت رو بخونم و عرضم رو به پایان برسونم پس فرمود امیرالمؤمنین اگر خداوند میخواست ان حده هم میگوشود ثروت ها را برای این پیامبران گنج های طلا را گنج های ذر ناب را جنگل های دنیا را تمام مقارس و تمام سمرات دنیا را و مشهور می کند با ایشان تویور پرندگان آسمان وحوش زمینی را اگر می خواست این کار را می کرد یعنی اینها را در اوج ذر و زور قرار میداد اما ولو فعلا لسغت البلا دیگه چیزی به نام ابتلا و حقیقت سنجی دیگه وجود نداشت رب بتلال جزا دیگه جزاء وجود نداشت چون اگه مردم می اومدن خاطر این خطام می اومدن دیگه گفت رعیت الناس منفزه الامن اندهو فزه و من لا اندهو فزه و انه الناس منفزه رعیت الناس قد ذهبو الامن اندهو ذهبو و من لا ذهبو و انه الناس قد ذهبو رعیت الناس قد مالو الامن اندهو مالو و من لا مالو و انه الناس قد مالو. تمام این سه شعری که خوندم همش یه معناس بالاخره مال را مال میگوین لمیل ناسه الی چون میکشه و اینا به خاطر چیز دیگه میرفتن مردم دیگه اون حقیقت ایمان وجود نداشت دیگه لما وجبل القابلین اجور المبتلین دیگه اونها که استقاق داشتن فرقی نداشتن با دیگران ولست حقا المؤمنون ثواب المحسنین دیگه ثواب مؤمن و محسن وجود نداشت اصلا این اسامی از بیخوبون میرفت ایمان به چه تقوای در چه صبوری با چه کافر و فاصل اصلا دیگه اینا وجود نداره هیچ چی از بیخوبون همه چیز برداشته می بلکهنل حالا این ولاکن الله سبحانه او جعل رسوله اما خداوند چی داد به پیامبرانش خوب گوش کنید عزیزان جعل رسوله رسوله اولی قوهن فی ازائمهم خداوند ثروتی و قدرتی که به پیامبران داد در کجا داد در جانشون، در نفسشون و در وجودشون به اینها قوت داد اولی از دارای عزم اراده پولادین فسبر کما صبره، اولو من الرسول اون عزم اراده مستحکم استوار قوت نفس می نجنبم که کوه الوندم المؤمن كالجبل راوسخ، لا يحركه الاواصف ايمانيا دماوند چیز پیش قدرت و صلابت جان اینها و نفس اینها اولی قوه تن فی عزائمهم و تن فی ما ترى الاعیون من حالاتهم اما با اون قوت درونی اصلا جبروت و قدرت نشون ندادن در بیرون حالات بیرونیشون این نبود و حال که درونشون این اقتدار مع قناعتن تملع القلوب و العيون اینها ثروتشون کجا بود در جانشون بود اینها به جای رسیدن که تمام دنیا و امکانات دنیا در نظر اینها چیزی نبود اینها خودشون رو خیلی بالاتر از این امکانات نفس پر سیراب از غنای الهی نه گرسنه نه و تشنه نه اینکه اگر هرچی در کامشون بریزند باز کفیر, کفیر تفدادند تفدیدند اینها جانشون سیراب و پر متصل به سرمنشه لایزال صفات الهی و سرمست و مستفیز و مستفیزی از جلوات جلال و جمال حضرت جانان ما غنا آتن تملوال قلوبه ول آیونه بناد چشمشون سیر جانشون سیر سیراب از لطف الهی و خصاسه آتن تملوال آبشاره ول از اما در ظاهر که نگاه میکنید کنید خصاسه داشتم خصاسه ول آوکانه بهم خدای اوثرون علا انفاسه هم ول آوکانه بهم خصاسه حاجت شکل عادی زندگی میکردن نیازهای بشری دارن اما وجودشون مملو و پر و نوکاهنت اهل قومت لا از اینجا حضرت ادامه این بحث رو باز در یه هوای دیگه ای مطرح میکنن که ان الله ماشار مبارک دوستان دو عزیزان فردا ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد خداوند سبحان دلهای ما را به سخنان مولانا و امیرالمؤمنین بیش از بیش عارف آشنا بگرداند <تصفيق> و سلام علیکم و رحمت الله